فصل دو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و عاله ربایی ولادت حضرت مصطفی صلی الله و امام صادق علیه السلام این مجده به قلبهای عاشق آمد هادی همه را سوی حقایق آمد تبریک بگو به باقر و عبدالله چون حضرت مصطفی و صادق آمد شهادت حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله وقتی رسول مهربانی از جهان رفت دلگرمی زهرای عطر بیگمان رفت پشت و پناه حیدر کرار او بود شد جسم پاکش خاک و روحش هم جنان رفت بابا بزرگ بی نظیر مجتبا بود غمگین حسین از اینکه احمد آسمان رفت هم جایگاه مرتضا شد بعد او قصب هم با ستمها از تن ست دیق جان رفت وقتی که تنها شد علی سی سال دیگر با تیغ پر زهر از تنش تاب و توان رفت جانها بسوزد در هاش، وقتی در جای لطف مستفا هی هی hey,